روی زخرو و الْكِتَابَ الله إِنَّا جَعَلْنَاهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ بِنَامِ است يا الله, يا الله به این کتاب بیان کننده حقایق ما این قرآن را فسیح و گویا قرار دادیم تا در آن تعقل کنیم و آن در عممل کتاب نزد ماست و بیشک بلند مرتبه و حکیم است آیا این قرآن پنداموز را از شما دریغ کنیم؟ به خاطر آنکه مردمیه در دهنده نعممات الهی هستیم؟ چه پیام پیامبرانی که برای پیشینیان فرستادی هر پیامبری که به سراغشان رفت فقط او را تمسخر کردند سرانجام کسانی را که نیرومن تر از اینان بودند هلاک کردیم و به دینسان ماجرای پیشینیان گذشت چنانچه از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفری بیشک بگند همه آنها را خدای قدرتمند و آگاه آفری است. همان خدایی که زمین را بستر شما قرار داد و در آن راههایی ایجاد کرد. امید آنکه راه یابید. همان کسی که از آسمان آبی به اندازه نازل کرد تا به واسطه آن سرزمین مرد را زندگردانی همین گونه نیز زنده از قبرها خارج خواهید شد. کسی که همه جفت ها را بیافرید و برای شما مرکب از فلک و انعام ساخت تا بر برانها سوار شوید. چون بر پشت آنها قرار گرفتید، نعمت‌های پروردگارتان را یاد کنید و بگویید منزه است خدایی که این نعمات را در اختیار ما گذاشت. حالان که ما توانایی خلق چنین چیزهایی را نداشتیم. و ما به سوی پروردگار گارمان باز می گردیم. آنها برای خداوند از میان بندگانش فرزندی قائل شدند راستی انسان یک ناسپاس واقعی است آیا خداوند از میان مخلوقاتش دختران را برای خود اختیار کرده و پسران را برای شما برگزیده است و چون به یکی از آنها تولد همان چیزی را که به خدا نسبت میدهد مژده دهند از خجالت رویش سیاه شده و وجودش را خشب پرامی میگیرند. آیا کسی که در زینت و آرایش پرورش یافته و انگام جنگ و جدال ناپیداست از آن خداست؟ آنها فرشتگان را که بندگان خدای رحمان هستند دختران پنداشتند یا شاهد خلق آنها بودند گواهی آنان نوشته می شود و در مورد آن بازخواست خواهند شد. گفتند اگر خدای رحمان می‌خواست، ما آنها را پرستش نمیکردیم. آنها ناآگاهند و سخنی جز به دروغ نمیگویند. شاید هم کتابی پیش از این برایشان آورده ایم و آنها به آن متمسک شدند. این گونه نیست. آنها میگویند ما پدرانمان را برایین یافته و از آثار آنها راهنمایی نمایی می گیریم به ما هیچ پیامبر حشداردهندهی را قبل از تو به سرزمینی نفرستادیم مگر که ناز پرورده گفتند ما پدرانمان را برایین یافته و فقط به آثار آنها اقتدا میکنیم. پیامبر گفت آیا اگر من آیین بهتر و هدایت بخشتر از آنچه نزد پدرانتان یافته اید بیاورم باز هم حقایق را انکار میکنی؟ گفتند ما نسبت به آنچه شما آورده اید کافریم پس ما نیز از آنها انتقام گرفتیم به اینگر تکذیب کنندگان چگونه بود؟ و بیا هنگامی که ابراهیم به پدر و قومش گفت من از آن که شما میپرستید بیزارم فقط آن خدایی را که مرا آفریده است میپرستم و نیز مرا به راه نجات هدایت خواهد کرد بدین سان ابراهیم کلمه توحید را یک کلمه جافدان در اعقاب و فرزندان خود بهجا گذاشت تا همواره به سوی خدا بازگردند لیکن اینها و پدرانشان را از نعمتهای زندگی بهرمند کردم تا انگاه که حق و پیامبر روشنگر به سراغشان آمد و انگامی که حق برانها آشکار شد گفتند این سهر و جادوست و ما آن را انکار میکنیم و گفتند چرا این قرآن بر بزرگ مردی از این دو قریه مکه و طائف نازل نشده است آیا مگر آنها تقسیم کننده رحمت پروردگارت هستند ما معیشت و رحمت الهی را در زندگی دنیا بین آنها تقسیم میکنیم و بعضی را بر بعضی دیگر به درجاتی برتری میبخشیم تا برخی برخی دیگر را به خدمت گیرند و کارها پیش برود بدون که رحمت پروردگارت از که جمع می کنند بهتر است اگر مردم تبدیل به یک امت واحد گمراه نمی شدند ما برای خانه های کسانی که به خدای رحمان کافرند سقفی از نگره و پلکانهایی قرار میدادیم تا از آن بالا روند و برای خانه درها و تختهایی قرار میدادیم دادیم که آن تکیه کنند و زخرفا و این کل ذلك لما متاع الحیات الدنیا و الاخرت رند ربک همچنین انواع زیبرالات را عطایشان می کردی. اما تمام اینها مطاع ناچیز زندگی دنیاست. حال حالان که حیات جاودان در محضر پروردگارت خاص کسانی است که حرمت خداوند را نگاه میدارند دارند هر کس از یاد خدای رحمان روی بگرداند شیطانی را به سویش میفرستیم فرستیم که هموار قرینش باشد وان آنها را از راه نجات بخش الهی باز می‌دارند. در حالی که می هدایت شده. تا آن هنگام که نزد ما بیاید و گوید، کاش بین من و تو فاصله مشرق تا مغرب وجود داشت حقیقتاً چه بد هم نشینی هستی. امروز این حرف ها برایتان سودی ندارد زیرا ظلم کرده اید و همهتان در عذاب شریک دیگری آیا تو می توانی سخنت را به گوش ناشنوایان برسانی؟ یا نابینایان به کسانی را که در گمراهی آشکاری به سر می برند هدایت نمایی؟ هرگاه تو را از میان آنها ببریم، بطعا از آنها انتقام می و یا اگر عذابی را که به آنها وعده داده ایم، در زمان حیاتت به تو دهیم باز ما بر آنها قادریم آن چرا به تو وحش شده است محکم بگیر که تو بر راه راست و درستی قرآن مایه پند تو و قوم توست و به زودی همگی بازخواست خواهید شد از پیانبرانی که قبل از تو فرستاده این بپرس آیا ما بجز خدای رحمان خدایان دیگری را برای پرستش آنان قرار داده بودیم؟ ما موسا را با آیات من به سوی فرعون و اشراف قومش فرستادیم و موسی گفت من پیامبر پروردگار جهانیانم و انگامی که آیات ما را برایشان آورد به ناگاه همه از آن به خنده هر آیه و معجزهی که به آنها نشان دادیم از معجزه دیگر بزرگتر بود حتی آنها را گرفتار بلا کردیم شاید از انحراف بازگردند هنگام که گرفتار بلا شدند گفتند ای جادوگر، به بنابر عهدی که خدا با تو دارد پروردگارت را به خاطر ما دعا کن تا این بلاها رفت شود و قطعا ما هدایت یافتگانیم اما چون بلا را از آنها برداشتیم پیمان خود را شکستند فرعون، قوم خود را ندا داد و گفت آیا این سرزمین مصر و نرهای دران از آن من نیست؟ مگر نمی بینی؟ آیا من بهترم؟ یا این مرد خار و زلیل که تا درست حرف زدن را نمی چرا دستبندهایی از طلا بر دستانش نیست؟ و یا فرشتگانی همراه او نیامدند؟ فرعون چون قوم خود را کم ارزش کرد از او اطاعت کردند زیرا آنها قومی زشتکار و بدسیرتند چون با نپذیرفتن هم ما را از خود ناامید ساختند از آنها انتقام گرفتیم و همشان را غرق نمودیم و آنها را جزو اولین درس عبرتهای آیندگان قرار دادیم چون ماجرای ایسا پسر مریم گفته شد قوم تو شادمانه سر و صدا به راه انداختند و گفتند آیا خدایان ما بهتر است یا او عیسی؟ و این سخن را جز برای جدال با تو نگفتند زیرا آنها مردمی ستیز جوگند او فقط ای بود که محمد اطایش کرده بودیم و او را الگوگ بنی اسرائیل قرار دادیم بدانید اگر بخواهیم فرشتگانی را به جای شما در زمین پدید می آوریم تا جانشین شما باشد او مسیح نشانه فرارسیدن رستاخیز است هرگز در آن تردید نکنید و از من تبعیت کنید که راه راست و درست همین است و شیطان شما را از راه نجات و آرامش الهی باز ندارد که او برای شما یک دشمن واقعی است هنگامی که ایسا با دلایل روشنی آمد گفت من برای شما حکمت آوردم تا پاره‌ای از آن چیزهایی را که در آن اختلاف می‌کنید بیان نمایم پس حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و از من اطاعت کنید این الله و ربی و فاعبدون الله پروردگار من و شماست پس او را بپرستید که این راه راست و درست است اما گروهها در بین خود اختلاف کردند پس وای به حال ظالمان از عذاب آن روز دردناک آیا؟ جزین انتظار دارند که قیامت ناگان به سراغشان آید در حالی که نمیفهمند در آن روز به جز کسانی که حرمت خدا را نگاه داشتند همه دوستان دشمنان یک دیگر خواهند بود ای بندگان من امروز هیچ ترسی بر شما نیست و هیچ اندوهی در شما راه ندارد همان بندگانی که به آیات ما ایمان دارند و سرافا تسلیم حقند شما و همسرانتان شادمانه به بهشت داخل شدید ظرف ها و جام زرین را در اطراف آنها میگردانند و در بهشت آنچه که دل بخواهد و چشم از آن لذت به برد موجود است و شما در آن جاودانه خواهید این همان است که شما به پاس عمل خوبتان به عرص در آنجا برای شما میبه های است که از آن بهرهمند می شدید. اما مجرمان در عذاب جهنم جاودان هم. عذابشان تخفیف نمیابد و سراپا معیوز بدانید ما به آنها ظلم نکردیم بلکه آنها خود به خیشتن ظلم ربا داشتند. در آنجا فریاد زنند ای مالک جهنم، کاش پروردگار تو ما را بکشد و جواب دهد، نه شما در اینجا ماندنی هستید یادتان میآید حق را برایتان آوردیم اما اکثر شما از حق کراهت داشتید بدانید که آنها بر اندیشه باطل خود پای فشردند ما نیز بر اراده حق محکم بودیم آنها می پنداشتن ما اسرار و نجواهاشان را نمی شنمی. حالان که رسولان ما از آنها همه چیز را می نوشتند بگو اگر خدای رحمان فرزندی می داشت من اولین کسی بودم که مطیع او شدم اما منزه است پروردگار آسمان ها و زمین همان پروردگار عرش از تهمتهایی هایی که می زنن. اكنون رواغه جان كن تا در افکار باطل خیش فرو روند و سرگرم باشند تا روزی را که به آنها وعده داده شده ملاقات نمایند وہ هو الذی فالسماء الیہ و فالارض الیہ وہ هو الحکیم او است که در آسمان خدا و در زمین نیز خداست اوست خدای حکیم و دانا با برکت و بزرگ است خدایی که فرمان روایی آسمان ها و زمین و آن میان آنهاست از آن اوست آگاهی از زمان وقوع قیامت نزد اوست و همه شما به سوی او باز میگردید کسانی که مشکین به جای خداون می خوانند قادر به شفاعت کسی نیستند مگر کسانی که از روی علم و آگاهی به حق شهادت داده باشند چنانکه از آنها سؤال کنی چه کسی آنها را آفریده است؟ بیشک خواهند گفت الله پس چگونه است که از حق منحرف می شوند؟ چگونه از دعای پیام که گفته از پروردگارا اینها مردمی هستند که به حقایق ایمان نمی آورند غافل می شوند. تو از آنها درگذر و فقط بگو سلام به زودی را خواهند فهمید فصفح عنهم و سلام فسوف یعلم صدق الله العلي راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم.